ریشی درون جامه داشتم و شیخ از آن هر روز بپرسیدی که چون است و نپرسیدی کجاست دانستم از آن می میکند که ذکر همه عضوی روا نباشد و گفته اند هر که سخن نسنجد از جوابش برنجد تا نیک ندانی که سخن عین سباب است باید که به گفتن دهن از هم نگشایی گر راست سخنگویی و در بند بمانی، بهزان که دروغت دهد از بند رهایی.